عاطفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گناه می بنوش لطف الهی بکند کار خیش مجد رحمت برسانت رساند این خرد خام به میخانه بر تا می لعلا بردش خون به دوش گرچه به سالش نه به دهند هر قدر ای دل که توانی بکوش لطف خدا بیشتر از جرم ماست نکته سربسته چدانی خموش گوش من و حلقه گیسوی یار روی من و خاک در میفروش رندی حافظ نگناهی سب با کرم پادشه ای پوش داور دین شاخ شجاع آن کرد روح قدس حلقه امرش به گوش ای ملک الاش مرادش بده و از خطر چشم بدش دار گوش